حکایت سحبان وائل را در فساحت بی نظیر به حکم آن که سالی بر سر جمعی سخن گفتی و لفظی مکرر نکردی و اگر همون اتفاق افتادی به عبارتی دیگر بگفتی و از جمری آداب ندمای ملوک یکی این است، سخن گرچه دلبند و شیرین بود. سزاوار تصدیق و تحسین بود، چو یک بار گفتی، مگو باز پس، که حلوا چو یک بار خوردند، بس،